الله الرحمن الرحیم رب الله رسول الله آله المعصومین اللهم بحثی که عنوان شده بود بحث سبُل مؤمن بود که در عنوان مرحوم شیخ انصاری آمده بود و حتی مرحوم و استاد نوشتن که در روایات عنوان سفر مؤمن آمده و مؤمن در روایات ما غیر از مؤمن در روایات اهل سنته درست این مطلبیشان که مؤمن در روایات ما غیر از مؤمن در عوارات اهل سنت. بحث کلامی بسیار پرنزایی بوده که پرق بین ایمان و کفر چیه؟ گفتن هر کسی که مسلمه مؤمن هم هست و بالعکس ادهی میگوهتن نه اسلام غیر از ایمانه به آخر بحثایی که جا جا جا راجع به بحث سب روایاتی که ما داریم در میان موشیه که کلمه مؤمن داره در میان اهل سنت هم مؤمن هم داره مسلم هم داره نه فقط عنوان مؤمن عنوان مسلم هم داره اضافه برای اینکه من سبب اخا من سبب اصحابی اناوین دیگه هم داریم اصولاً در سببی که در روایات وارد شده مجموعاً به جماعت خورده به حیوان خورده به دیک و قروس و اینا خورده نمیزم سبب آلهه که عبدون من دون الله در قرآن هست راجع به اون قسمتی که سبب الموتا هست اناوین متعددیه فقط عنوان سبب المؤمن نیست قوانینی که در متن شما روایات راجع به حکمش هم عبارات مختلفیه. توی بعضی‌ها داره من تو روات شیعه نگیدم حالا ممکنم باشه آقا نگاشتم پیدا کردم من نه و نگیدم من هم حجت نشه ده درصد استغفار نکرده باشه. اما در روایات اهل سنت داریم سب المؤمن که قتلید. سب لائم المؤمن بخیل لعن باشه. لعن المؤمن که قتلید. لائن المؤمن که قاتلی اینها هم داریم از عنوان لعن نه عنوان است عنوان لعن مستقلن در روایات ما در یک سند واضحی نیامده در روایات اونها آمده و در بحثی که اخیرا مطرح کردیم هدف این بود که آیا لعن و سب یکی هن یا دوتا اون عبارتی که ما امروز گفتیم مثلا از کتاب سحا خوندیم تو خود ابن سیده هم داره لعنه و ای شتم لذا عده استظهار کردن لعن و شرط ما لعن مؤمن هم در روات آمه داریم سب مؤمن هم داریم و لیکن انصاف قصصه سب چه الانه که می شوفه پیدا شد لعنش می انصاف قصصه اینه که عرض کردیم بین سب و لعن فرقه و بعضی از شب بحثی رو که انجام دادیم و مثلا شواهد قرآنی شواهد روایات شواهد آیات مثلا فرض کن رسول الله لعن فلان شهرم داریم امیر المومن لعن معاوی و امرعاست مثلا فیسالاتی با این که فهمون لا تکون و سبابی شواهد زیاده شواهد در این نقطه که لعن غیرت شتمه شتم مؤمن و صدب مؤمن یک چیزه و مسئله لعن چیز دیگری که توضیحش داده شد البته اینم نمیشه انکار کرد در یک فهم ابتدایی بسیط و عرفی اگر گفت لعنت بر فلان میگن چرا فحش میدی این هست چه لمه تشبوه این هست لكن ظاهرا این یک نکته باشه که بعد ها پیدا شده در استعمالات دقیقش بین فرقی بین سب و شد و لعن هست این که ما بگیم مثلا فلان شت لا و سب و بالا که یجوز و لعن درست مضافاً به این که یه بحث دیگری اهل سنت مطرح کرده بودن که لعن شخص رو می‌گفتن جایز نیست، لکن چون در روایات داریم که حتی خود رسول الله لعن کردن، نمیتونیم این مطلب رو منکر بشیم. این جایی بحث نداره. اون وقت یک برای اینکه یک شاهد دیگه ما برای این مطلب نعرو بکنین، همون قصه بود که ما عرض کردیم در زمان ما رسما اهل مدینه رو به سبب امیر وادار کرد من از کردم روایته حالا تصادفاً چون من سعی مسلم برای جدیگه آورده این چاپی که من از سعی مسلم دارم یه چاپیست که با شرح نوری نوری معروف از بزرگانشون این جده به اصطلاح 15 به حسب این چاپ چون دیگه طبعا چاپاش مختلفه به هر حال بابش مهمه ابواب و فضائل صحابه فضا علی ابن ابی طالب اونجا ایچون داره من یک حدیث اول بخونم بعد برم به اون حدیثی که مربوط به ما نحنفید میشه این حدیث که دیگه مسلم آورده پسر سعد ابن ابی وقاص از پدرش نرخ میکنه انعبی قال امر ما آبیتو ابن عبی صوفیان فقال ما منع که انتصبه عبدتران چرا سبب علی ابن عبی طالب نمیکنه فقال اما ما ذكرت سلاسن لهن نع فقالهن له رسول الله صلى الله عليه و وسلم به تعبيرشون فلن أصب به فلن أسبق صبر و لن تكون لي واحده تن منهن احب الي من حمر نعم حمر یعنی شتورهای قرمز رنگ رنگ تقریبا پرتقالی این بهترین بهسا بهتر شتور بود نوعی شتور بعد این سه تا مطلب رو که در کتب اهل سنت نقل شده و بعض این مطلب از کردم اینقدر در کتب اهل سنت آمده که تقریبا میشه گفت که کم نظیره چون اهل سنت هم این جور جامعهش آوردهن هم بدون صدرش آوردن هم تیکی تیکی آوردن این سه تا مطلب یکیش اینه من حدیثی می‌خونم شد از زبان سعد که خود سعدم با علی نبیص بالا نکرد با عثمان یکی از کسانی که با امیر المؤمنین نکرد خود سعد البته عذرش این بود که اختلاف شده اگر همه صحابه همه مردم بیعت کردن من آخرین نفر قطعاً بیعت میکنم چون چند نفر اراده بیعت نکرد از این جهت ادعاش این بود سمعت رسول الله صلی الله علیه وآلی و علیه وسلم یقول له خلفه في بعض مغازی مال قصه تبوک سال نهم فقال له علی یا رسول الله خلفتنی من نصاب اسبیان فقال له رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اما تروا ان من منزلت هارون من موسا. این حدیث است که دیگه قطعاً ساده سری که از اسهاء اصلاً شما مال ساده. الا انه لا نوبت و این یکی و سمعته او خیبر یقول یا بول یا مخیبر لعاتیان نرایت رجلان الله و رسوله و الله و رسوله قال فتطاول تا ول نقض شجاع بود. قد ریزی کوتاهی داشت اما فوق العاده شجاع بود خیلی بدن که از شجاعان از اهل مکه هم بود یکی از شجاعان صدر اسلام حساب میشه همین صدر نوری و خاص به عمر صدر معروف فتا ناله ها همه ما آرزو کردیم که پرچم رو به ما بده فقال ادعوا علیان فاتی به احمد فصا از چشمش دزد میکرد فبصق فی عینه و دفع الرایه الی فتحه الله عليه. این دوتا ما فقل و رسول الله الله عليه حسن و حسینا اللهم این من حدیث این یک لفت دیگه من حرص کنم مطلب رو سعد بفتون یادم هستون دو سیش آدم ده این هر سه مطلب رو سعد حالا در همین باب حالا بعد به اصانی دیگه خیلی داره من نبخوام واضح و اصانی رو در همین باب در تقریبا آخر فضا الامیر المؤمنینه بله بعد در همین جا این حدیث سقلین هم همین جاست از زید بن عرقه این رسول الله بل خم این قصه قبیخ خم رو هم همینجا مسلم داری این قصه رو بخاری نداره بعد میاد تا اینجا در با صفحه 181 همین اواخر فضائل امیرالمؤمنین قال حد... الى قال انا ابي حدثنا عبد العزيز ان سهل بن سح... سهل ابن سعد همینی که قصه معروف اون زنی که آمد عرز نفس نفسه رسولا که زیاد هم نقل شده سهل ابن سعد سائدی قال استعمل علمدینه عل که این هم از بزرگان انصار و بزرگان از چیز از صحابه است رجلون من آل مروان یک نفر از آل مروان رو عامل مدینه احتمال هم داره عبد الملک ابن مروان باشه چون عبدالملک الملک ارز شونزه ساله بود اون رو عنوان والی مدینه قرار دادن زمان خود امام مشتبه امام مشتبه هیونیورزن این جوان شونزه ساله رو استعمل علی المدینه رجلون من آل مروان قال فدعا سحلبن سعد همین سحلبن سعد به اصطلاح واسه هایدی رو دعا فعمره و انیشت من علیم یشت اینا خیلی راحته برای شما مطلب اشغال زمانی که شیعه مثلا سبب صحابه میکنه خیلی راحت این مطالب رو در کتاباشون هم مینویسن نه ف... مسلمه نه نه سعی صحیح مسلم ترجمه میکنن ایشون بعدن هم سعی مسلم هم کتابه و سعد امره و ادشت معلیه صاف میشن گفت شما بیاین شتم علی رو نمیتونید فبا سهل سر گفت نه من سبب نمیکنم فقال الله اما اذا عبید حالا که شتم میمکنی فقال لعن الله و عبدترا شاهد قلید که بین شتم و لعن فرق میدیدن خوب دقیق یادید؟ من فانده ایش فقال لح اما اذا عبید فقال لعن الله و عبدترا اقلید اینو بگو حالا اون شتم نمیکنید یا سه یه مسلم کنم تحجیب آوره یعنی کارشون به کجا رفته؟ فقال سهلان ما کان لعن چون معابیه یعنی خاکی میگویند عبود تراب این خاشی این دو خاطر اینکه اهانت بکنند فقال سهلان ما کان لعلیه اسمان احبة الیه من عبود تراب و این کان این اینجا به اصطلاح است این یعنی و این نه کان لیف راه علا دعای بها سخفش حال میشد بشه عبود تراب میگوته نه کنار بشه فقال اون والیله اخدرنا ان قصفته لمه سمیه عبا تراب قال جا رسول الله صلی الله عليه و علیه و عسن فاطمه ما هم داریم حالا این یک شرحی داره اینجا اینجوری نقلش کرده فلم یجد علیهن فی البیت فقال این ابن عمک فقالت کان بینی و بینهو شیعون فقاوبنی فخرج فلم یقیل اندی اقا قال یقیلو یعنی خواب ظهر پینو به ویسلا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ل انسان انظر اين هو فجاء فقال رسول الله في المسجد راقد فجاء ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم و, و هو ملتجئ قد سقط رداؤه ان شقه حضرت از شانه حضرت افتاده بود فعصابه او تراب یک مقدار خاک به به شانه حضرت رسیده بود فجعل رسول الله صلی الله علیه و علیه یمسحه عن خود پیغمبر خاکا رو پاک میکردن و یقول قم ابد تو را نزان دو امیرالمومنین خوشحال بود با این اسم نه اینکه شما رو این اسم منشأ اشکالی داره حضرت بود این هم راجع پس بنابر این دوستا مکلفی که صادرم گفتم براتون کاملا روشن بشه که این اصل سب صحابه توسط خود صحابه و در مدینه شروع شد که حالا اینقدر مزن شیعه رو اشغال بکنم و این مثلی هم که اخیران خوندم کاملا روشن کرد که مسئله سب رو باش لند دو تا می دونست دارد زیلش کامل قدر بله چه روش داره؟ حالا در روایات ما یک در خصال صدوی بایی که نه مثلا توجیه داره که یرا برای حمزه این کارو کردن چون مثلا جریان دیگه بود بعدن ابوبکر و عمر رو بردند شما شاهد باشی و بعد هدفش این بود که یعنی هر کسی که از زهرا غضب بکنه با من یعنی این اینو یک بهانه قرار دادن برای طعن بر اون دو نفر که غضب کنه حالا به هر حال اصلا چون یک شرحی داره که علی این این زمین که خیلی لطیفه فازا زمانم با ملایمت این خاکار رو بر کنار می‌کردم میگفتم قم از این خاکی هست معلوم نیست حالا اگرم باشه شده امر عادی بوده حالا برفرض باشه داره که حضرت منو ناراحت که حضرت رفتن بیرون اگرم باشه مشکلی نداره قبولش به هر حال من اون که محل شاهد ماست فعلا اون قسمت اول حدیثه که با علنی به طور خیلی راحت اول امره او به شتم علیه امره او به لعن علیه و سهلم گفت که آقا این لعن خیالا این لعن که از اما دیگه نداره که لعن بعد خود صحنه کار کرد آیا واقعا لعن کرد یا نه کیف ماقا این راجعه به تا این جای بحث بود انصافا البته این یک نکته ای هم عرض بکنم همون نکته ای که من دیروز عرض کردم که لعن چطور یک نوع از جزای عمل حساب میشه و غیر از سبه مجموعه روایاتی که درش لعن هم استفاده میشه انصافا روایات زیادیه و در این روایاتی که ما داریم چهل سنت چهل شیعه در بعضی ها لعن به خدا نسبت داده شده در بعضی ها به رسول الله نسبت داده شده در بعضی ها به ملائکه نسبت داده شده طلعن الملائکه در بعضی ها ملعونون علی لسان سبعین نبی نسبت داده شده در بعضی ها یلعنهم بعض اللهائنون نسبت داده شده انصافا موارد نسبتی که داریم خیلی مختلفه و موضوع جالبی هم واسه من خود من یه مقدار فهرستوار روایاتش نگاه کردم می‌خواستم بگم بعدیم خیلی طولانی میشه آ مراجعه کنند انصافا مجموعه روایاتی که درش لعن وارد شده انصافا یک جزوه ای میشه کراسی میشه به این روز هم اگر انسان بتونه روایاتی که در لعن مؤمن لعن حیوانات لعن جماد اینها حتی لعن ملائکه وارد شده اینا رو جمع کنه یعنی که جمعاتش راحت و بعد روایاتی که مواردی که رسول الله لعن کردن و شاید بشه گفت مواردی که لعن به رسول الله یا به ملائک نسبت داده شده باشه شاید کنایه از درجات لعن باشه اگر به خدا باشه اگر در قرآن باشه که راحت مثل لعن الله آکل الروا این لعن الله آکل الروا چون اسناد لعن الالله چون در قرآن هست فعلا او به من الله رسول خود واضحه وقتی کسی با خدا جنگ بکنه قطعاً مطروده این واضحه یه جاهایی هم هست لن به خدا نسبت داده شده ظاهرا در قرآن نیست ظاهرا اینجور جاها رو باید قاهل بشیم یا مثلا بگیم تصحیفی واقع شده مثلا همین لعن الله و فلخمره اشراه دو تا نسخه داریم تو اده از نسخ لعن الله داریم که تو احل سانات هم بیشتر این باشه. تو ادوی از نسخ اهل سنت و خود ما لعن رسول الله فرخم رحشه این طور نیست که همهش لعن الله باشه اینم یک یعنی به عبارت اخرا میشه گفت که از نظر فقهی اونی که به درد فقه میکره بین موارد لعن الله و لعن رسول رو فرق بگذاریم حالا این فرق رو یا به هر که در بعضی از موارد قایل شد یا فرق بذاریم به همون فرق فریضه و سنت که ما هستیم این فقط یک مشکل داریم مشکلشی باید یک نهوی حل بکنیم چون من الان متعرض و مشکل شدم دیگران متعرض نشدن اون مشکل اینه که ما در مواردی لعن الله داریم اونو در قرآن نداریم حتی همین روایتی که الان بحثش به بود اخیرن لعن الله الراشی و المرتشی و الرائشی در صورتی که ما اگر برفرزن در قرآن داشته باشیم لا تأکل و انبالکن بینکن بالباطل و تدلوبه ها حکام که ظاهرش به اصطلاح راشیه ظاهرش وقت در این جور جا که لعن الله الراشی از ارز من که ران کردم. لعن الله الراشی و در روایت ما نیامده در روایت اهل سنت هست اهل سنت هم در مسادر اولیه مثل بخاری نداره هم؟ دقیق کرده؟ برفرض هم حدیث قبول بشه این جای بحث داره یک آیا این لعن الله یا لعن رسول الله دو آیا این اگر لعن الله باشه مراد این است که مراد اینه که پیغمبر اکرم در حقیقت آیه مبارکه رو تفسیر کردن؟ چون فرمون لا تأکل و اموالکن بینکن بالباطل اول به سیغه جمع آوردن که زاره مراد جامعه است. یعنی پیغمبر اکتم میخوان بفرمون ولو ظاهر آیه تدلوب هایلالحکام خصوص راشیه خوب دقیق میکنین ظاهرش راشیه دیگه تدلوب هایلالحکام اما چون میگه لا تأکل و اموالکن بینکن کسانی که این رشوره میخورد یکیش راشیه یکیش مرتشی که هم واسده دلاله در حقیقت رسول الله میخوان با این تعبیر خودشون تفسیر بکنن که ظاهر آیه تدلوست واقع آیه هر عمل حرامه دقت بکردیم هم راشی حرامه هم مرتشی حرامه هم رائش حرامه ظاهرش اینه تدلو به هایل الحکام ظاهرش اینه چون داره لا تکلو و لا تک یعنی مجموعه افرادی که در باب رشوه پول گیرشون میاد یکی راشیه که پول میده، یکی قاضیه که پول میگیره یکی همواسته و دلاله لاله پول گیریشون میاد دیگه پس احتمال داره که لعن الله و راشی و مرتشی و راش یک نوع تثیر برای آیه باشه احتمال هم داره که حاکی از این باشه که در واقع حکم الهی اینه ولو در ظاهر قرآن خصوص راشیه لیکن حکم الهی اینه به اصطلاح به شبیه نسخد تلاوه گای حکم هست ولو در قرآن ذکر نمیشه شبیه اونی که ما الان شبیه میگم شبیه اونی که ما الان باشیم اون حدیث قدسی پس یک بحثی هست این بحث نظر من بحث لطیفیه خود من هم نمیتونم من فقط الان ابداع احتمال کردم یه جنبندی کلی الان بهش میتونیم برسید ما مواردی داریم که در روایات آن لعن الله به حسب ظاهرم در قرآن نیست یا باید بگیم جز باطن قرآنه که مثلا خود رسول الله خبر داشتم یا باید بگیم یک نوع تحریفی در لعن رسول الله خم به نظرم اونجا باید رسول الله باشید و انسجام قانونیش هم همینه انسجام قانونیش لعن رسول الله باشه چرا؟ چون وقتی که در آیات مبارکه شرب خمر حرام شد پیغمبر اکرم ارز کن سنان پیغمبر اینطوره پیغمبر اکرم مقدمات خمر رو هم حرام کرده در آیه مبارکه خود شرب خمر حرام شد اما در سنت رسول الله مقدمات و لذا مناسبتر این است که لعن رسول الله باشه ممکنم در واقع لعن الله باشه مثلا حدیث قدسی بوده شبیه حدیث قدسی نه حدیث قدسی تلامی بوده آیاتی بوده مانن سخمن آیتن جزء آیاتی بوده که نصف شده مثلا نمیتونیم به هر حال یک جور در روایات ما با یک مقدار با مشکل روبرو رو هستیم یعنی به نظر ما باید تمام این روایات داندانه تحلیل بشه به هر حال اگر آیان وقت کردن بعضی ها مایل بودن جمع مجموعه روایات لعن در مراتب مختلفش خیلی لطیفه چون روایات لعن چون که من دیدم از روایات سب هم بیشتره هم لعن مؤمن هست هم لعن سب مسلم هست سب مؤمن الان تو ذهنم هست سب صحابه هم تو ذهنم هست اما به اصطلاح مثل سب دج هم شاید حالا من الان مطمئن نیستم لعنش سب در سبش از ذهنم. اینا اگر کم بشه انصافا موارد خوبیه مواردی هم که ما الان بالفعل در روایات ائمه علیه السلام یا پیغمبر لعن کرد لعن الله من فعل كذا لعن الله اینا هم جمع آوری بشه انصافا خیلی مفیده که دیگه حالا از این بحث خارج میشه. این تا اینجای بحث بحث دیگری که در اینجا مطرح شده از صابر ہم کردیم حالا برای انسجام بحث از کلمات مرحوم استاد هم می‌خونیم با این مقدماتی که ما عرض کردیم تعریف صبه که سب از ده تا اینجایی که ما الان عرض کردیم ظواهر کلام خوبی هم دارند ثم من در شرع بازیشه ثم من مر از ظاهر من العرف و لغه اعتبار لعهانت و تعییر اینجا تعبیر ناشه تعبیر آر فی مفهوم سب و کونهی تنقیصن و ازراعن علال مسبوب و انهو متحدون معشد بعد الاخره کلام این که این مطلبی رو که مرموم شیخ و مرموم استاد داره انصافت حرص بدیمی است البته اگر ما بخواهیم به نهر بسیار دغیر تعریف دقیقی از سب بدیم و بعد تشخیص بدیم کدوم لفظ طبقی این تعریف سب هست نیست انصافا این کار نشدنی یعنی کاریست که الان نمیشیم و برش دقیق بدیم و از سبر شما کرارن عرض کردیم و ارشی چون در جامعه قرار داده شده و تفصیم تفهم شده یک حد محدود دقیق علمی نداره لفظ آب لفظ خانه این قابل انتباهی ای چیزاست خیلی کوچیکهسون که از یه خوان نگه مثلا لانه بشه اما یه چیزی هست مردوده یه چیزی از قطعا خوانه یه چیزی از قطعا یعنی خوانه یعنی عرف اصولا طبیعت و عرف اینه که مفاهیم عرفی یک حد واضحی که ما بتوانیم همه موارد رو با اون درست بکنیم نداریم این طبیعی اینطور اما اینکه صبر درش مفهوم آرخاویده همینطوری که ایشون فرضی در به لغت آمده. این که بزاعت و لسان و لسان در لابه بدزبانی باشد با سب یکی هم باشه این هم روشنگیز خیلی غیر از این کارا میگن ترادو در لغت من نذاره خیلی واضح شاید نباشه نتوانیم دقیقاً بگیم تمام ممکن است بدزبانی یک مرحله ایستاد کنه کسی که زبانشو به دست نمیگیره برای حرفای سبک میزنه برای زشت میزنه اونم بدزبان بد غرزم به هر حال انصافن این مفاهیم عرفی یک معنای دقیقی که حد و حدود او رو بتونیم دقیقا بیان بکنیم حده آن برای ماها مشکلی انصافن اونی که ما از مجموعی شواهد در میاریم انصافن در مفهوم سب نو آر خوابیده. که اصلا سبه که پیما بعد و آر بوده که ما حتی احتمال دادیم که سبه از سبه اشتخاف پیدا کرده حالا سبه از یه لغت دیگر بود یه لغت عربی اصیل بوده اون جای خودش داره به هر حال انصافاً اون چه که منچه آر آر هم میگن یک است که انسان خجالت میکشه او رو ظاهر بکنه و لذا اورت رو هم میگن از آر مشتق شده به خاطر همین جمع لذا اورت هم یه بازوچه حاضر نیست و رو مردمشون بده یک کسی حاضر نیست هست کنه ران پانشه به مردم نشان بده اصطلاح آر اون چیزیست که انسان سعی میکنه جرو دیگران علنی نشه این رو اصطلاحاً آر میدونه بره اون بحث دیگریست آفات لسان اون بحث کربراییست این فرمان کونه تشاری شد در آخری تاریخ این همه همه لذا بحث سب انصافا همین مطلبی که ایشون فرموندن اجمالا در نظر عرف اینه اما حالا دقیقا بتونیم یک تحلیل دقیقی از لغت بلیم مثلا اضافه بر اینکه که آر باشه سبب اذیت او هم بشه حالا ممکنه کسی اذیت نشه اضافه بر اینکه که آر و سبب اذیت باشه موجب یک نقصی در جامعه بشه مثلا بگیم سب اینه هم ایجاد آر بکنه هم ایجاد اذیت بکنه هم شأن اجتماعیش پایین بیاره حالا ممکن است یک شخصی باشه اصلا خودش دینسه شأن اجتماعی نباشه اما سب سب به دیگه شاتش شاتونه آر هم آره مثلا آیا اینها توش خابیده تو هم لفظ مفردش آیا فقط آر بودن مهمه ایزا هم باید اضافه بشین تنقید هم دقت میکنید این اصلا نظریه است که من عرض کردم ما حتی مفردات رو هم تحلیل میکنه این در کلمه صبر چه چیزی خوابیده انصافش الان بیش از آر مشکل در آورده تنقیس مثلا توش باشه مثلا توش ایذا باشه حالا اگر کسی هم باشه اذیت نمیشه یا از این شخص به شیوه‌ای اذیت نمیشه یا می‌تازه انصافا ظاهرا صدق صبر مؤمن بکنه هیچ مشکل نداره یعنی ما در باب صبر این مقدار که منشه آر باشه کافیه اون وقت اون نکتهی که ارز کردیم که معنای سب در اصمان قطعه مثلا باید بگیم این آری ای که او رو از یک چیزی قطع بکنه ارز کردیم اش ما معنای اصلی به معنا معتبر نیست که در معنا باشه اونه که معتبر توازر و ارپیز. فهم و ارتیز مثلا شما بگید باید یک نوع آری باشه که توش قط بیاد اگر بدون قط باشه مثل تنقیصی باشه قطی باشه اگر از کردیم بر فرز هم ما قبول بکنیم که سب این معنا قبل در لغت عرب شواهد داره سبم با عنوان اهانت و تعییر و شط این هم شواهد داره حالا این بر اون برگرده که ما این لغاویین یا بر نگرده هر کدوم اصلا مستقل باشه هم دو احتمال داره بر فرز هم برگرده لازم نیست اون معنا در سب ملاحظه بشه این لازم نیست در اصلش ملاحظه شده. اگر باز از ملاحظه شده باشه مثل عقل لاحظ لازم نمیذارین شما عقل ندارید تصور کنید ایوال دقیق رو مثلا ایوال شطور رو مثلا اون که زانوی شطور رو باش زانو زانوبند شطور رو لازم نیست در مفهوم عقل متصور ما بکنید مالو در اصلش باشه اون اصل بودن قیل از دخالت در تبادر و انسواق معنا از ذهنه دقت فرمایید ظاهرا ل... آید مفهوم نسبی و عرفی است و را هم به شخص کار نداره البته اگر فرض کنیم یک شخصی یک لحظه در حق به او گفته بشه بگه من آرام میاد این بیشتر باز می شه عنوان ایذا امامه اگر ارتن صدف نباشه حرمت سبش ثابت نیست ممکن است کسی از یک لفظ ایذا پیدا بکنه ممکنه لکن در نظر عرف سب نباشه به هر حال ما دلیلی نداریم که مجموعه آفات لسان باعث یه چیز برگرده. یکی ممکن از باب ایزا باشه یکی ممکن از باب باشه یکی ممکن از غیبت باشه غیبت باشه و علم جفر بنابراین یک درس رو با افراد متفاوت به حساب بشه و ممکن از یک لحاظ سبب باشه از یک لحاظ اضافه بر سبب دروغ هم باشه مثلا بو میگه علاق به معنی کمفن اضافه به اینکه طرف کم فهم میزه یه خود داره میگه خودش هم میزه دروغ میگه این ممکنه دو عنوان در از صدق بکنه ولذا طبق این قاعده نتیجه دیگه یعنی بحث دیگه آیا این عنوان سب با اناوین دیگه قابل اجتماع هستن؟ بله هستن منافات نداره مثلا البته غالبا لنگه ای در صدق. اما ممکنه پس بنابراین ممکن است که عنوان به اصطلاح سب صدق بکنه کذب هم صدق بکنه مثلا میگه تو مثلا ای اولا اولاق یعنی نادان کم فهم ای گاو مثلا در واقع هم گاو یعنی واقع هم کم فهم خیلی باهوش با استدار. دو تا نقطه داشته باشه هم سب باشه هم که باشه ما دلیل و یکی مثلا فضاقی از یک در سب باشه و موجب هم و موجب ایزا هم بشه یعنی به اینکه ایجاد ایزا برای اون کرده یک حساب داشته باشه به لحاظ سب حساب دیگری باشه به طبق قائده در اینجا دلیلی بر تداخل نداریم نه تداخل اسباب و نه تداخل مسببا طبق قاعده باید بگیم هر دو بار میشه البته در موارد تداخل که مرمون شیخ هم متعرض شده مسئله غیبت با سببه مرحوم استاد اولا یه عبارتی رو از مرحوم شیخ در بحث غیبت آوردن اونجا هم نسبت صبر و با غیبت نویستن حالا چون خیلی بحث احتیاجون من دیگه آران خودشون مراجع کنم به کتاب استاد اما خود مرحوم استاد میفهمن تحقیق این است که نسبتشون اممون بشه نسبت دین غیبت فعنه و بدیت حق و صبر و دایست تصف به عنوان غیبه که انیو خاطب المصروف به صفت مشهوره معقصد احانت و اذلال صفت مشهوره این ظهاره صفتی که همه میدونم فه این ظهاره که لیسه اظهارن ستر الله سترالله چون و قد تتحقق الغیبه حیثلای تحقق الثب که انیت کلم به کلام نیوزه رو بیهی ما, ستر الله, ما ستر الله من غیر قصد تنقیصه من غیر قصد تنقیصه و قد یشتم آن هر دو میشه باشه هم غیبت باشه هم سب و تعدد الاقاق فی مورد الاجتماع لکن کل من موضوع موضوعا للاقاق فلا و وجر التداخل و لا الا هذا مراد المصنف این مطلب بود که مرحوم استاد فرمودن ایشون در مقابل استادشون مرحوم ایروانی مرحوم ایروانی میشه نسبت بین سب و غیبت تباونه تواینه چون سب و بغصب انشاء و امال غیبه فا جمعه تون خبریه یک جمله خبریه و فی ها انهو لا دیل علاها دهیت تفره من هما یتحقق به کل منل و الاخبار این مطلب ایشان درسته هم سر هم صد به قصد انشاع که تصویر شده یعنی به این معنی که ایجاد بکنه ولی درش نباشه و به انشاء و به اخبار میشه و درست این مطلب ایشان درسته اما حق در مقام اینه که اصولا در باب قیبت اون لحاظی که شده لحاظ قائب بودنه این اشتباهی است که بعد توضیح میدیم در اون صفتی که قائب باشه و مراد از غیبت در اینجا در حقیقت که خواهد آنه شای تو بحث قیبت هم خود شخص نباشه و یکی که اون صفت معلوم نباشه البته این که شخص نباشه متعارفه و این دخیل نیست در غیبت اونی که در غیبت دخیل اساسا قائب بودن صفته یعنی و صفت نه فعلم همینطوره عقیده هم همینطوره فرض کنید شخصی که عقیده انحرافی داره اما ابراز نمیکنه پیش مردم کسی هم به این نمیشناسه و فرض کنید مثلا است که موجب کفرم نمیشه حالا فرض کنید مثل بعض از بزرگان گفته مثلا ائمه علیه موضوعات نداشتن علم حو... به علم به اصطلاح علم تنجیزی و نه تاریخی علم تنجیزی موضوعات نداشت اما نمیخواد این مطلب مفرح بشید خیلی خوب هستن از بزرگانم قالبین هستن صار استادم تو قالن که لکن مایل نیستن این مطلب نقل بشه وجه غیبت مثلا سعیش غیبته. غیبت غیبت خواه بودن خود شخص غیبت کلام است به اصلا غیاب گفته میشین این راضی نیست این صفت این فعل این عقیده یه است که مستوره حاضر نیست این مستور بین مردم گفته بشین این اصلا توش نخوابیده که مسئله این که حالا قبیح باشه یا قبیح نباشه اصلا قبیح هم نیست فصل روی سیناش یک مثلا جوان بوده فاسق بوده یک مهید چیه بیان خالکو بی کرده لی محال الانشان آیت الله شده مگر کسی بفهمه روز دیه خالکوییه کم مشکل, مشکل در دیگه وقتی بچه بود خالکویی کردن این مشکل که حرام باشه دقت میکنید لازم لازم اصلا غیبت در حقیقت خاطر آمد ان شاء تعالی رو که اخافت به ما یکره ولو سمعت کوشش مطلب گفته بشه در باب غیبت تنقیس در باب غیبت مساله اصطلاح ایزا مسئله سب مسئله آر اصلا خابیده نیست کلا این هم احتمال داده شده اون گفتن اون یه کمی عمر طبیعی شخصیه شاید مثلا از باب گیزا مومن دیگه از باب غیبت نیست یک صفت غائبی در شخص باشه یا عقیدهی باشه یا فعلی باشه چیزی باشه دلش نمیخواد این علنی بشه ولذا اگر اون صفت غال قائب نباشه مثلا مردم دیدن میگه نه تو باز نبود خب با من که میگم میگه مردم دیدن اینی که میگن در باب قیبت در جایی که سطر نباشه قیبت نیست چون قیبت شرطش قائب بودنه وقتی قائب نباشه حاضر باشه دیگه قیبت صدق نمیکنه کنه پس در باب قیبت ما با این جهت رو برو هستیم یعنی اون نکته اساسی بر این است که صفتي فعلی عقیده‌ای خصوصیدی در شخص است یکره اولو سمع ناراحت میشه این تحلیل غیبت در باب صد اصلا این نکته مطرح نیست بحث غیبت مطرح نیست بحث غائب بودن مطرح نیست حتی بحث یکره اولو سمع مطرح نیست چون نشون به صفت مشهوره در بحث صد مشهور و غیر مشهور مطرح نیست حتی اگر مشهور باشه نکتش نکت مشهوریت و مستوریت نیست نکتش اینه که فی نفسه کلامیست که این کلام از حد متعارف پایینه و یک نوع ظلمه یک نوع تحدیه اصلا اون نکتش اون نیست آره لذا نکته ای که در باب غیبت هست غیر از ای است که در باب سبه در باب سب ببینید در باب سب اصلا بحث این نیست که صفت در او هست یا نه ممکن است صفتی هم در او باشه مثلا میگم آقا شما حافظه‌تون میکنه میگیم شما علاقی خب این دو تا با هم خیلی فرق می‌کنه دقت بکنید نگم بیا آقای کم حافظه مثلا شما یه کمی درجه ذریبهوشو مثلا سه 4ه نگم علاقم این دو تا هم اون که در باب غیبته وقتی اخبار بده از ذریبهوش حالا فرض این شخص می‌زافه پیشه یک مرکز روانشناسی یا به هوش پایین باشه نمیخواد کسی بفهمه ذریب هوشش پایینه خب واقعا و خب نمیخواد این سفره اگه بفهمه ناراحت میشه یه چیز خاصی بوده میگن یکی از اصول حرفه‌ای دکترها که بعضی از امراضی که از مثلا علائم بزرگا منفیشون اعلام نکنن این یکی از اصول حرفه‌ایه این فنه خب حالا این مرضی داره ولی این واقعیت داره مثلا به هوشش پایینه اما نمیخواد کسی این رو بفهمه پس نکته‌ای که در بابت من فکر می‌کنم مرحوم آقای به اصطلاح مرحوم ایروانی نظرش شاید به این بوده که اون نکته‌ای که در غیبته اساساً این که گفته تواین غیر از نکته‌ای است که در غیبته در صفحه بله اگر کسی درجه هوشش پایین بود شما اگر پشت سرش گفتین درجه هوشش کمه این غیبته اما ای مثل این مثل علاقه خب این سبب هست حالا این به این معنا ممکن است به این معنا ممکن است با قول با غیبت هم جمع بشه اگر مراد حکایت کم‌هوشی اون باشه یعنی این لازم. لکن نکته اینه که در بحث سبب این نکته رو مراعات نکردن که این در واقع هست یا نیست. باش یا نباشه. در سبب ملاحظه نکردن اون مسطور است یا مشهوره. اصلا به این نگاه نشده در صد لحاظ نشده که این در واقع کمهوشه یا نه گفتن شما اگر بی این بگیم اولاق این, این حرامه صد مؤمنه ولو کمهوش باشه یا نباشه دقت میکنید اون نقطه ای که به عنوان آفت لسان قرار دادن اینه نقطه اینه حالا ممکن است بگیم در نظر عرف گفتن اولاق به فرض کمهوشه و تصادفا این هم خیلی باهوشه بگیم اگر این صد و عرفی چون کلام هست کنم لازه باید تفیم و میکنه اگر این صد و عرفی درست باشه اینجا هم صده و هم کذبه به این معنا به الام به صد یک نکتهیه مثب غیبت نکتهی دیگریه اصلا دو نکتهی بستقل هم غیبت ناظر به اینه که فردی که دارای صفتی یا امری هست حاضر نیست اون صفت گفته بشه و شما بگین این مثب به نکتی این آفت لسان اقیبت اینه اصلا با آقیبت دو تا چیزه الفاظ زش گفتن غیر از اینکه که کسی رو رگیم چرا؟ من فکر میکنم مرحومی روانی نظر مبارکش بگیم بوده یعنی اون ذرافت کار و نکتی ذریف هم نیسته نکته کار در سب این نیست که اون سفر غائب است یا حاضر مستور است یا مشهور راضی هست یا راضی نیست این کاری به اون نداره نکته سب اینه که که است که منشه آره ارف در ارف آره لفظ قبیهیه لفظ قبیهی به ما هو قبیهی این استعمالش در اشخاص سبیه حالا اگر این لفظ قبیه از نظر عرفی دارای یک معنایی هم باشه یعنی اولاق این آدم بیهوش کمهوش دقت بکنیم اگر اولاق دارایی معنای عرفی باشه یک لفظ قبیهه دو این آقا باهوشه ممکن است از این جهت هم معاخذه بشه به خاطر این نکته عرفی اگر پشت سرش گفت این اولاق و به فعل هم هوش بود ترسون ارخن یعنی این بی این وسیله به مردم رسون که این آقا هوشه. پس این نکته درسته که گاهی ممکن است صد با غیبت با هم جمع بشن وکه این جمع شدنشون از این قبیله مثل سیاهی و شیرینیه مثل سفیدی و شیرینیه مثل متخالفین اینه به قول این جمع شدنشون از این قبیله و الله خود سر این هم که مرحومه ای روانی فرمودن انشا یعنی ابداع میکنه میگه مثلا این عنوان اولاغیت اولاغی نیست که بهش میده راست به این معنی انشا به این معنی اینه که استاد میفرمونده اخبار به این معنی که انشا وقتی نمیگیم مثلا فلانی مثل اولاغه این در این حال یک درجه از اخبار هم داره اون نظرش بیشتر به وضعه این نظرش بیشتر به فهم عرفیه ما این توضیحات انشا در بحث کذ از ارز کاریم که خود انشا که میگن متصف به صدقه کذ نمیشه مراد خود ذات انشائه اما به لحاظ فهم عرفی و لوازم عرفی چرا متصف میشه مثلا میگن یعنی استفهام متصف نمیشه به صدقه کذ مثلا میگن سهم کجاست این متصف نمیشه این انشا کرده اجازه این متصف به صدقه نمیشه درست به خود انشا متصف نمیشه اما به لحاظ تلازم و عرفی دقت میکنی؟ چون در عرف استفهام جایی درسته که انسان نداند جاهل باشه عرفی نمی من دیگه وقتی گفت صحنه کجاست؟ میگیم این آقا نمی داند این به تلازم و عرفیست وضع نشده اون وقت اگر میگانه داند میگیم دروغ داره میگه میگه صحن کجاست میگیم دروغ میگه این دروغش اون لازم و عرفیشه و سعی میکنه این کی میگیم دو سوال میکنه. مثلا میگه لایت دیکرت نگ ای کاش مثلا 100 میلیون زمان پول داشته. یکی میگه دروغ. یکی تو خونه شرمنده مثلا دو میگه زمان پول نه داشته. این داره دروغ میگه. دروغ توی تمنی نیست. چون تمنی رو فاقد تمنی میکنه. در اونی کسی که چیزی نداره تمنی میکنه. وقتی فاقدش بود تمنی میکنه. اگر میگیم صدق و کست به لحاظ این لازمه مثلا ازاچه ها اکر منافقون یا قدون اینکه رسول الله و انک علم و اینکه در رسول الله و اللهوی اشتراین در منافقی لکارون خب گفت اینکه در رسول الله درسته اینکه در رسول الله صدق و کست نیست که همین کلام یک هم داره اون مدلول حال مدلول حالیه من وقتی صحبت میکنم حاکی از ما فلقل دانه ببینی این اسم شیره مدلوله دیگه مدلول حالی و اللهو یش هدوی اندال منافقین لکازه بون در این مدلول این نکل رسول الله صدقه اما من که دارم صحبت میکنم ما فلغرب امین بیان میکنم دروغ میگه این دار دروغ میگه ما فلغربشه بگه ده میکنه استفهام میکنه میگیم آه دروغ میگه آه استفهام که میگن انشاء صدقه از نداره بله انشاء خودش که نفسه صدقه نداره. یک حالی داره. دقت کرد استفهام مال انسان شاهرگه، با خودش خبر داره، خود سوال می‌کنه. دروغ میگه. این در این سوال، در این استفام دروغ میگه. تمنا می‌کنه، در تمنای که دروغ نمیگه، تمنا دروغ نراسته. اما می‌گیم دروغ میگه، چرا شون تمنا رو فاقد می‌کنه؟ این آقا واجده. تمنا چه می‌کنه؟ دقت کردیم پس بنابر این دقت در بکنید، سب خود سب اینه، خود سب به کیفت نیست. اما سر اگر کاشف باشید به فهم عرفی میگه وقتی میگه اولاق یعنی کم استعداد خود اون طرف میدونه کم استعداده نمیخواد این صفت کم استعدادی گفته بشه خوب دقیق کردیم از این زاویه از این زاویه لیلله اگر فهمیدیم در قرصی هم نفهمیدین اگر به کسی گفت اولاق معناش این ذریعه و پایین باشید این دیگه اصلا قیباتم نیست این دیگه ا اگر میخواد قیبت بگه این ایک مرحوم هایی ای روانی گفته حرف بدی نیست با این توضیحات ما حرف بدی نیست حرف استال هم حرف بدی نیست مرحوم استال به لازم کلام نگاه کرده یعنی وقتی گفت کلانی و الاخه. یعنی میخواد بگم این ذریع و حوشیش پاییده بعد این اشکال داره قیبت هم میکنه اما اگر این مفهوم در نه نب... قیبت ساتون میخواد این باید صرف میشه ا يلا خلينا